بسم الله الرحمن الرحیم، گروه سرود آسانی ابن ثابت از مدرسه دار القرآن سلامان تقدیم می‌دارد. بسم الله الرحمن الرحیم قرآن بیام روشنایی بخش دنیا و دلها روشن کننده راه سعادت بشر با نور توحید نوری که تمام جهان از برکت آن دابنده و درخشان شده به تاریکی های کور از بین رفته هست قرآن موجزه جاوید حضرت محمد مستقا قرآن, قرآن همان برنامه خوشبختی انسان بحلول فلا ورستگاری بنشان دی روشنائی التاریکی از رب مهربان است قرآن بهار دلها قرآن صفای جان است قرآن پیام روشن از رب مهربان است قرآن کتاب حکمت نور از گردون این نسخ جاویدان است قرآن بحار دلها قرآن صفای جان است قرآن پیام روشن ادرب رب می ربان است قرآن کتاب حکمت نور رعی سعادت تا از شرخ گردون این نسخ جاویدان است قرآن که در فصاحت مثل و بدل ندارد شرین ترین کلام و بیاناس بیان است تاریکی و سیاهی گمراهی تباهی با بی با دیلش برچید زین جهاناس است قرآن که در فصاحت مثل و بدل ندارد ترین کلام و شیواترین بیان است تاریکی و سیاهی گمراهی و تباهی بنور بیبدیلش بی برچید از این جهان است دل چون کبیر سوزن جن چون اسیر اتشان قرآن بی جان و دل باران آسمان است قرآن بخن مسلمان از بر حفظ ایمان چون آی آیه آی آن دین چو دل, دل چون کبیر سوزن جان چون اسیر اتشان قرآن بجان و دلچون چون باران آسمان است قرآن بخن مسلمان از بر حفظ ایمان چون آی آیه آی آن دین را چو پاسبان قانون رستگاری در قلب خود تو داری برنامه ای که جایش در قلب مومنان است مومن بیا او بشتا این حدیرات تو داریاب چون بی شمار گوهر در باطنش نهان قانون رستگاری در قلب خود تو داری برنامه ای که جایش در قلب مومنان است مومن بیا و بشتاب اینه دیرات و دریاب چونتی شمار گوهر در باطنش نهان است قرآن بهار دلها قرآن سفای جان است قرآن پیام روشن از رب مهربان است قرآن پیام روشن از رب مهربان است پیام از است